نامگذاری پسر به اسم محمد صبحان درست یا نه در مورد نامگذاری ها یه نقطه مختصر بگم هر نامی که چسبید نمیگن نام بعضی نام ها خیلی خوبن خیلی پر محتوا اما رو بچه ها نمیذارم حالا بگی برایل خیلی خوبه بچه برایل بزار میکیل بزار اضرای این اینجور نیست. اسمی ملائکر نمی گیرم مکروح هست یا مثلا سبحان, سبحان، اسم خیلی خوبیه اما یه بسم الله خیلی بسم الله هست اسمی یا یه سبحان آیا خوبه نا خود اسم خوبه اما نام گزاریون ایست خوبی نیست چون گاه گاهی اون نام گزاری فالباد می گیرم نبی بکرمی سلام صلی اللہ علیہ وسلم خانمش حضرت زینب اسمش برره بود برره یعن نیکوکار نیکوکار فهم بودن تو نیکوکار هستی اما اسم تو زینبه اون رو به زینب تغییر چرا فهمون چون که من وقتی برای از خونه بیرون چی میگم خرجت عمد برره پیانبر از نیکی بیرون ما پیانبر از نیکی میری بیرون همین تعبیری غلط درست نیست این فعال بدش درست نیست سبحان خوبه صبحان فاق هم آیا و اندامی از صبحان مرد فاکی مرد صبحان خراب شد این های معنی غلطی است در کلام ما پیش می آین تنها صبحان گذاشتن خوب نیست محمد صبحان صبحان احمد صبحان محمود راه داره اما اسامی دیگر رو بذارید باید اسمی بذارید که این بدون اسم بر فرزندان تاثیر گذارید اسم خوب اثرات خوبی داره. اسم بد اثرات بدی داره اینجور نباش دنبال بگردید که خودون اسم اصلا هیچ کت استفاده نکرده من استفاده بکنم این غلطه اسمی رو بگیرید که انبیا گرفته اند اسم بچه خود رو به اسم انبیا نام بزاری که تو تاثیر خوبی دارن نبی مکرن اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بچهی که متولد شد از خودش نماز فضل خون فرمودن که ولد لی اللی لح من بچه دار شدم سمیتو به اسم ابی ابراهیم اسم او را ابراهیم گذاشتم چرا ابراهیم امام الانبیا ابراهیم شخصیتی بود که تمام انبیا پدر انبیا بود نسل انبیا از او جاری شد فبوده من ابراهیم گذاشتم پس علم خود اسم ابراهیم اسم خوبه اما در اسم بعضی از اسامی معانی غلط دارند مثلا یک صحابی اسمش رو حزن اون وقت داخل سی بخاری میاد آمد پیش نبی مکرم سلام صلی الله علیه و آله گفت اسم چیه که حزن گفت نه اسم تو سهله گف گفت نه این اسمیا که پدرم گذاشت یادگار پدری هست من بر نمی دارم فرمون خیلی خوب بر نداد بر نداشت این پدر بزرگ حضرت کی بود حضرت سید ابن مسیب فرمود مازال عوزون فینا همیشه در ما این سختی ما حزن یعنی سخت یعنی تون خود، تون اخلاق فرم بوده همیشه ایمان ای کاش اون وقتی نبی کریف همون عوضش خمان عوض میکردن. کردن بعد بعضی اسامی رو عوضی رو بچه تاثیر میگذاره؟ اصلا اسمش ها هر ها روزی ای حزان ای حزان ای حزان ای اما اگر اسم باش سلیم، سحیل، سن بعضی افراد بیمار میشن اسم نهار تغییر بده خوب می شن این شخص می بیمار بشی. کیشی تا زولامارا بچه بیم همیشه بیمار بیمار بیمار فهم بودن اسمش سلیم هست مردمی گفت سلیم سلیم سالن سالن سالم شو همین دعا است همین ندا از تعصیدی کلامی هست این کلمات ای تو خود عربی احادیث بررسی کنی در احادیث کسی که مارگزیده باشه در عربی باید گفته چه لدیق یعنی مارگزیده اما در عربی هرگز نمیگن لدیق میگن سلیم سلیم اصلا معنی با مستمع برای مارگزیده نیست مارگزیده یا لدیغ باید اما به مارگزیده میگن لدیغ سلیم سلیم یعنی سالم یعنی فعال معنیش آواز می کنید تا ازید نمیره از از زخمین تاثیر داره پس خیلی از افراد دنبال نامی که حتی برای خود بنده که بیش از حد سوال میفرستن که اسمی برای دختر من بزار که اصلا هیچ کس حال استفاده نکرده حال هر چی من هم دگردان در دا کل دایره المعارف جهان چنی اسمی نیست چون غطا نام کسی قبلا بوده هر اسمی همر باشه قبل کسی استفاده که پس نام کسی شودی اینجور نه اسامی انبیا صالحین رو انتخاب بکنی و این روش صحابه بود خود انبیا صالحین گذشته صحابه همی کار میکند داخل صحیح بخاری حدیثی سیزاری که وقتی که حدیث مونذر در زبیر معونه شهید سود یا اوروا شهید سود حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ و تعالیٰ عنہ دو تا بچه‌هاش به همین اسم نامگذاری کرد که چون اینها اونجاش از صالحین شهدا قامت بچه‌مان به همین نامه نام, نام علما بغیرتی صالحین رو بگیرید شاء فعال فال میگنی که نا صالحین برسن فال خیر ثابته و خوبه